دوستان سلام و به دانشکدی کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. ما اولین کتاب از کتاب مقدس کلام خدا رو مطالعه می کتاب پیدایش که بر زندگی سه مرد متمرکزه. ابراهیم که از او آموختیم که ایمان چگونه چیزیه. یعقوب که از او آموختیم که هویت ما در خدا چیه و چگونه اراده خدا رو درک کنیم. و یوسف که امروز به مطالعه زندگی اون شروع می کنیم. یکی از پاکترین زندگی های کتاب مقدس رو از زندگی اون یاد می‌گیریم. حالا بیاین به معلممون و درس امروز خدایی که مسئول هست گوش کنیم. به برنامه دیگری از دانشکته کوچک کتاب مقدس خوش آمدید. برای من افتخار بزرگیه که شما تصمیم گرفتید در این کلاس با ما همراه باشید. در ادامه بررسی کتاب پیدایش میخوایم نگاهی بندازیم به سومن شخصیتی که در کتاب پیدایش هست. فضای زیادی در کتاب پیدایش به این شخصیت اختصاص داده شده. در بابهای گذشته ما شخصیت ابراهیم رو بررسی کردیم که برای ما از ایمان حرف میزنه و از شخصیت یعقوب که با ما از بحران هویت صحبت میکنه و اینکه چطور میتونیم اراده خدا رو برای زندگیمون درک بکنیم. و بفهمیم که آیا آنچه که داریم از خودمون داریم یا با فیض خداست؟ بعد به چهارده با به آخر کتاب پیدایش میرسیم که داستان یوسف رو به ما میگه. یوسف یکی از شخصیتهای پاک کتاب مقدس بود. بسیاری از شخصیتهای کتاب مقدس امتیازها و کاستی‌های خودشون رو داشتند. دیر یا زود انسانیت اونها بر و ما کاستی‌های اونها رو میبینیم. همون اندازه که امتیازاتشون رو می‌بینیم. کاستی های اونها رو هم میبینیم. یوسف و دانیال به نظر میرسند که از این قاعده مستثنه هستند. کتاب مقدس از کاستی های اونها چیزی نمیگه. تولد یوسف به نظر میرسه آملیه که یعقوب رو به حرکت در میاره که با دایی خود لابان اتمام حجت کنه و تصمیم بگیره که مرد خودش باشه. این زمانی بود که یوسف پسر یعقوب به دنیا میاد. یوسف اولین فرزندی بود که از راهیل به دنیا آمد. زنی که یعقوب خیلی دوستش داشت. یعقوب راهیل رو بیشتر از لیه دوست داشت و بیشتر از کنیزی که از او هم فرزندانی داشت. به محض اینکه راحیل یوسف رو به دنیا آورد به نظر میرسه که یعقوب در صدد برامد که باید از داییش لابان جدا بشه. اون از داییش رفت و تصمیم داشت که هر چی که سهمش هست از لابان بگیره. لابان یه جورایی او رو زیر سلطه داشت چون یوسف اولین فرزند راهیل بود یعقوب از او جانبداری میکرد یوسف آشکارا پسر محبوب یعقوب بود البته این سبب شد که برادران یوسف از او متنفر بشن و در صدد قتل او بربیان به عنوان یک نقشه جایگزین اونها تصمیم گرفتند که او رو به عنوان برده به بردهدارانی بفروشند که عازم مصر بودند پس تحت شرایطی که خارج از کنترل او بود یوسف خودش رو در مصر میبینه ابتدا به عنوان یک برده و بعد به عنوان یک زندانی به وسیله شرایط مشیتی و فوق طبیعی که توسط خداوند هماهنگ شده بود یوسف به عنوان وزیر اول مصر انتخاب میشه. یوسف دومین قدرت بعد از خود فرعون بود یوسف زندگی باشکوهی در مصر داشت یوسف شکی نداشت که خدا او را برای منظوری استراتژیک در مصر قرار داده بود البته خدا به خاطر پیشدانی و مشیتش میدونست که قحطی در راه است خدا میدونست که این قحتی میتونه این قوم منحصر به فرد رو که خلق کرده بود قوم برگزیده او باشن از روی زمین نابود کنه خدا میخواست که به شکل مسیح به این جهان بیاد و توسط این افراد نجات رو برای دنیا به ارمغان بیاره وقتی کتاب پیدایش به داستان یوسف میرسه در واقع اون برای ما داستانی از مشیت الهی میگه چهارده باب از کتاب مقدس به این اختصاص داده شده که به ما داستان العاده یوسف رو بگه. چرا کتاب مقدس چهارده باب رو اختصاص داده برای اینکه به ما داستان یک مرد رو بگه؟ باید پیغامی در داستان یوسف باشه. اون پیغام به نظر میرسه که در یک آیه در عهد جدید در رومیان 8-28 خلاصه شده که میگه میدانیم که در حق آنانی که خدا را دوست میدارن و بر طبق اراده او شدهاند همه چیزها با هم برای خیریت در کار است این آیه یک نصیحت و برکتی برای بسیاری از فرزندان خدا در طول قرنها بوده راه دیگه‌ای برای گفتن این میتونه این باشه ما میدونیم که هر چیزی که برای ما اتفاق میفته برای خیریت ما به کار میره اگه ما خدا رو دوست داشته باشیم و شایسته نقشه‌های او باشیم این داستان یوسف هست. جنبه مهم دیگری از پیغامی که ما از داستان یوسف میگیریم در یک کلمه خلاصه شده و اون کلمه فیز هست ما میبینیم که فیز در داستان یوسف نشان داده شده معنی فیز لطف و برکت خداست که ما شایسته نیستیم و نمیتونیم کسب کنیم و به دست بیاریم اون فقط به ما داده شده یعقوب فیز رو نشون داده چون سرانجام یعقوب یاد گرفت که او از خدا توسط فیز خدا برکت یافته این دلیل برکتی بود که او یافته بود هم روحانی و هم مادی. یعقوب تا مدتها فکر می‌کرد که او این برکات روحانی و مادی خود را به خاطر زیرکی و باهوشی و خلاقیت و تحریزی خودش کسب کرده. بزرگترین نمونه اون در داستان یعقوب و دایش لابان دیده میشه. وقتی لابان تصمیم گرفت مزد یعقوب رو بر مبنای این بپردازه که گله چگونه پرورش پیدا میکنه، یعقوب و لابان به این توافق رسیدن. اونها توافق کردند که تمامی بره‌ها و تمامی حیواناتی که خالدار و راه, راه به دنیا میان مال یعقوب باشن و بقیه اونها از آن الابان باشن. وقتی اونها این توافق کردند، یعقوب به جایی رفت که حیوانات آب میخوردن و چوبهای تازه از درخت کبوده و بادام و چنار برای خود گرفته و خطهای سفید در اونها کشید و چوبها را در حوزها و آبشخورها قرار میداد تا وقتی برای نوشیدن میامدن باردار شوند. پس گله ها پیش چوبها بارور می‌شدند و بر های مخطط و پیسه و او دانشکده تکنیک یا دوره نگهداری حیوانات را ندیده بود همه اینها ابداع یعقوب بود یعقوب باور داشت که طرح ریزی هیله‌گرانه برکتی که او داشت براش می آورد اما خدا براش باز کرد و گفت یعقوب اون به خاطر فیض من بوده نه به خاطر تو وقتی یعقوب با برادرش ایسو مواجه میشه ما می بینیم که او فیض رو شناخته بود چون او گفت خدا با فیضش با من رفتار نمود. وقتی من از این رودخانه عبور می کردم، جز یک چوب دستی چیزی نداشتم خدا منو تبدیل به یک ثروتمند کرده خدا با فیزش با من رفتار کرده در زندگی یعقوب فیز به این معنیه که خدا او رو کثیر کرده زنان و فرزندان و خادمین و ثروت عظیمش در نتیجه گری و مکاری خدا او نبودن یوسف همون حقیقت رو نشون میده اما به روش دیگه چیزی که یوسف نشون میده اینه یوسف در شرایط خیلی سختی افتاد او یه برده بود زندانی بود او از شرایط مشکلات سختی عبور می کرد اما به این دلیل نبود که شایسته او بود خودش اونها رو به دست آورد یا به نوعی سزاوارش بود بلکه برای اینکه خدا بتونه جلال پیدا کنه خدا با فیضش یعقوب رو برکت داد و با فیضش یوسف رو فراخوند که زندگی بسیار سختی رو بگذرونه برای اینکه خدا میخواست که با یک استراتژی او رو در مصر قرار بده خدا از این شرایط استفاده کرد تا او را آماده کنه و تربیت کنه تا توسط این تجربیات وقتی یوسف فرا خوانده شد این قوم منحصر به فرد رو نجات بده آماده باشه کسی که باید اونها را از قحطی و گرسنگی و مرگ نجات میداد یوسف آماده شد او در جایی درست قرار داشت و آماده بود که خدا از او استفاده کنه در پایان داستان یوسف آشکاره که یوسف دورنمایی از شرایط خودش رو داشت حالا بیایید به بعضی از کاربردها از داستان یوسف در زندگی های خودمون نگاهی بندازیم روابطی رو که یوسف با پدرش و برادرانش داشت ملاحظه کنید. اون خیلی با روابط عادی تفاوت داشت. همه ما میدونیم که ما قرار نیست که بین فرزندانمون تبعیض قائل بشیم. در حالی که یعقوب یوسف رو پسر سوگلی خودش قرار داد و از او جانب داری جانبداری کرد یعقوب آشکارا یک پدر کامل نبود. این در حق برادران یوسف منصفانه نبود و برای یوسف هم منصفانه نبود. تمام نفرتی رو که یوسف از جانب برادرانش دریافت می‌کرد ملاحظه و همه اون سختی‌ها و نفرت‌هایی که به زندگی او وارد شد من فکر می‌کنم که کاربرد این بخش از داستان یوسف دقیقا اینه هیچ کدام ما والدین کاملی نداشتیم ما به این دنیا میاییم با والدینی که ما اونها را انتخاب نکردیم ما به این دنیا میاییم با والدین و خواهر برادرانی که تاثیر عظیمی بر ما دارن اونها زندگی ما رو شکل میدن بسیاری از ما شکسته بال با دردسرها و سختی‌هایی در زندگیمون هستیم چون والدین ما یا خواهر و برادران ما قافل بودند اما خدا حاکمه این یک کاربرد از داستان یوسف برای زندگی ماست اگرچه والدین شما کامل نیستند و شاید به خاطر جهالت یا بدجنسی قفلت می‌کنند من فکر می‌کنم شما باید مثل دعایی که عیسی بر روی صلیب به ما یاد داد دعا کنید پدر اونها رو ببخش اونها نمی‌دونن چیکار دارن می‌کنند حتی اگه والدین شما به خواهران و برادران شما برای اینکه بال شما را بشکنن کمک می کنن، ایمان دارم که پیغام یوسف اینه خدا بر شرایط زندگی شما حاکم هست که این شامل والدین، برادران و خواهرانی میشه که وقتی به این دنیا می آید، اونها رو دارید خدا تأثیر والدین شما رو به کار می گیره حتی اگر اونها متخلف هستند خدا میتونه تونه تاثیر برادران و خواهران شما رو به کار بگیره حتی وقتی که اونها با شما بدرفتاری می میکنن. خدا میتونه واکنش شما به اونها رو به کار بگیره تا شما رو در زندگی شکل بده. روزی در جایی از این دنیا شما شایسته یه نقشه خدا خواهید شد. من ایمان دارم که خدا حاکم بر شرایط زندگی ماست. اگر ما به این شرایط با فیض او و با کمک او واکنش نشون بدیم او این شرایط رو به کار میگیره که ما رو برای خدمتی که میخواد روزی داشته باشیم شکل بده. آیا تا حالا به جایی رسیدید که مخصوصا در تون؟ خدا درهای موقعیتی رو برای شما گشوده باشه شما به اون موقعیت با این اعتقاد رفتید که خدا منو برای این موقعیت از روزی که به دنیا آمدم آماده کرده ایمان دارم که تمام زندگی من برای این موقعیت آماده شده شنیدم که خیلیا میگن اینو تجربه کردن این میتونه پیغام زندگی یوسف باشه گاهی اوقات چیزی که ما بهش بدبختی میگیم شرایطی خارج از کنترل ما که خیلی خیلی سخت هستند مشکلاتی که ما رو غافلگیر میکنن و میگیم چرا من چرا من باید این مشکلات رو داشته باشم؟ کلام مقدس میتونه به وسیله یوسف به ما بگه خدا بر همه اون چیزها حاکمه و وقتی خدا به شما فیض میبخشه که به این شرایط واکنشی نشون بدید که او شما رو وادار میکنه واکنش نشون بدید در میابید که همون شرایط، اون مشکل، اون افرادی که از بد و تولدتان در زندگی شما مشکل ساز بودن محرکه هایی هستند که خدا برای شکل دادن به زندگی شما به کار می گیره. اونها ابزارهایی هستند که خدا به کار میگیره تا زندگی شما رو شکل بده. به نحوی که روزی بر اساس اراده او خوانده بشید و سرنوشتتون رو به انجام برسونید. وقتی برادران یوسف بر او ظلم کردند، من تصور میکنم که شما قبلا اون داستان رو خوندید چون که من به شما تکلیف داده بودم. کاملا واضحه که یوسف دیدگاهی از تمام داستان داشته. در پیدایش پنجاه، نوزده تا بیست برادران از یوسف میترسند به محض اینکه پدر مرده اونا فکر میکنن که یوسف از اونها انتقام خواهد گرفت اما یوسف اینو میگه از من نترسی. تا اون که من میدونم تمام بدیهایی که شما در نظر داشتید خدا برای من به نیکویی بدل کرده چون خدا مرا به شغل والایی که امروز دارم رسونده تا اینکه بتونه زندگیهای بسیاری رو نجات بده من این حقیقت رو دوست دارم اگر شما سوال کنید و این از اون سوالهایی که یه بچه دوست داره بکنه خدا در طول روز چیکار میکنه؟ جوابهای زیادی هست. فکر میکنم یکی از اونها این باشه. خدا چیزهایی که بد هستن میگیره، حتی چیزهایی که برای بدی در نظر گرفته شده اند و اونها رو برمیگردونه و از اونها خوبی به بار میاره. خدا در تمام طول روز این کارو میکنه. این حقیقت یک تسلیه بزرگه. من یک سال رو هفته یکبار یک بار از خانهای به خاطر یک مادر خوانده دیدن میکردم. این خانه 33 تختخواب داشت، اما معمولاً چهل و پنج دختر در اونجا زندگی می‌کردن وقتی که کلام خدا رو با این دخترها در میون زاشتم پیدایش پنجاه 20 مفهوم بسیار بزرگی برای اونها داشت چیزی که برای بدی و بداندیشی آغاز میشه کتاب مقدس میگه چیزی گناه آلود خدا میتونه از اون برای خیریت استفاده کنه به عنوان یه شبان من قادر بودم که نوزادان زیادی رو که در اون خانه به دنیا می اومدن نزد مادرخوندهها در خانههای مسیحیان مهربان قرار بدم نزد والدینی که خدا توسط اونها بچه ها رو نگه می‌داشت. من دریافتم که کودکان زیادی در این دنیا هستند که پدر و مادر ندارند و والدین زیادی در این دنیا هستند که بچه ندارند. چه بسا هیچ توضیح پزشکی هم نداشت. دکترها نمیتونستند بفهمند که چرا این والدین نمی‌تونن بچه دار بشن. چه بسا این زوجهای بدون بچه انسان‌های خارق‌العاده‌ای بودند. به نظر می‌رسید که راه حل خدا خیلی واضحه. کنار هم قرار دادن والدینی که بچه نداشتند و بچه هایی که پدر و مادر نداشتند ما ترتیب فرزندخوندگی های زیادی رو می دادیم. من میتونستم به اون دخترها راجع به فرزنندخندگی هایی که ترتیب دادم زنگ بزنم. به اونها داستان هایی میگفتم از خانه هایی که از اونها بسیاری از این نوزادان بزرگ می شدن و شاد بودن زندگیشون رو میکردن و من میتونستم به اونها بگم این ممکنه شروعش به عنوان چیز بدی باشه اما خدا اون رو به خیریت بدل میکنه به کار خدا در کنار هم قرار دادن اون والدینی که نمیتونستن بچه دار بشن و به همون اندازه به بچه هایی که احتیاج به پدر و مادر داشتن فکر کنید. اون دختران و کسانی که در ارتباط بودن قصد بدی نداشتن. اون چیزی که کتاب مقدس اونو به عنوان گناه میدونه. یعنی اون بر اساس نقشه خدا نبود. حالا اگر خدا میتونست اون چیزی رو که با بدندیشی شروع شده و اون رو به کار نیکو بدل کنه او یقینا میتونه ضعف ما، اشتباهات ما و شکست های ما را هم به نکویی بدل کنه. امیدوارم که شما هم آرامشی رو بیابید که من از این واقعیت یافتم که وقتی ما میافتیم یا شکست میخوریم پدر آسمانی ما ما رو دور نمیندازه او ما رو بی قید و شرط دوست داره بنابراین او شکست های ما رو میگیره و اون رو تبدیل میکنه به نمونه ای که برازنده نیکویی باشه ما از زندگی ابراهیم ایمان رو آموختیم و در زندگی یعقوب که اسرائیل شد فیض رو آموختیم. حالا در زندگی یوسف باز هم فیض رو آموختیم، فیضی که منتهی به نجات میشه. خدا به هر حال شما رو دوست داره، حتی وقتی از نظر روحانی سقوط می‌کنید، اون مایل که فیضش رو نسار شما بکنه، همونطور که برای یوسف کرد. کاربرد واقعی برای زندگی‌های خودمون از مطالعه داستان یوسف در 14 باب آخر کتاب پیدایش ثبت شده. ملاحظه کنید که یوسف چقدر به حکمرانی خدا در تمامی شرایط خودش متقاعد شده بوده. در آیه پنج از باب چل و پنج کتاب پیدایش یوسف اون رو اینگونه بیان کرده. و حال رنجیده مشوید و متغیر نگردید که مرا بدینجا دینجا فروختید زیرا خدا مرا پیش روی شما فرستاد تا نفوس را زنده نگاه دارد و خدا مرا پیش روی شما فرستاد تا برای شما بقیتی در زمین نگاه دارد و شما را به نجاتی عظیم احیا کند و الان شما مرا اینجا نفرستادید بلکه خدا و او مرا پدر بر فرعون و آقا بر تمامی اهل خانه او و حاکم بر همه زمین مصر ساخت بشه تابید و نزد پدرم رفته به او گویید پسر تو یوسف چنین میگوید که خدا مرا حاکم تمامی مصر ساخته است. نزد من بیا و تأخیر من ما و در زمین جوشن ساکن شو. ببینید هیچ اشتباهی در ذهن یوسف نبود او تماما میفهمه که خدا در تمامی اینها حاکم بوده چون او به برادرانش میگه شما مرا به مصر نفرستادید شما فکر کردید که فرستادید شما حتی اون رو به عنوان کار بدی در نظر داشتید اما این شما نبودید که مرا به مصر فرستادید این خدا بود که مرا به مصر فرستاد کتاب پیدایش با این قوم برگزیده در سرزمین مصر خاتمه پیدا میکنه و این ما رو به کتاب دوم کتاب مقدس ادایت میکنه، کنه، کتاب خروج پس حالا ما حاضریم کتاب خروج رو بررسی کنیم چیزی که ما در زندگی و شرایط یوسف دیدیم به ما دیدگاهی تاریخی در کتاب خروج میده. یادتونه که ما در مقدمه کتاب مقدس گفتیم که کتاب مقدس همش مربوط به این قوم هست یازده باب اول کتاب مقدس به ما از تاریخچه سیاره زمین میگه و بسیاری از چیزهای دیگه اما وقتی که به انتهای باب 11 کتاب پیدایش می رسید و شروع می کنید به پیدایش باب دوازده شما از ابراهیم این مرد منحصر به فرد می شنوید. بهتره که توی پرانتز بگم که بقیه 1178 باب کتاب مقدس همش مربوط به ابراهیم و نسل او هست. به خصوص اون نسلی که توسط او تمامی قوم‌های زمین برکت یافتند. عیسی مسیح. چیزی که ما میگیم اینه تمام کتاب مقدس مربوط به اسرائیل هست. چرا اسرائیلین همه مهمه؟ به خاطر اینه که وقتی خدا تصمیم گرفت که او به این جهان خواهد آمد به عنوان یک مرد سیاه پوست یا سفید پوست یا زرد پوست و یا سرخ پوست نیامد. او قوم برگزیدهای خلق کرد به این منظور که توسط اون به دنیا بیاد. و اون قوم برگزیده قوم یهود بودن. اگر کسی حق داشته باشه که به نیاکانش افتخار کنه، اون قوم یهود هست خدا قوم یهود رو به این منظور خلق کرد. او میخواست که انسان بشه و او میخواست قومی خلق کنه که توسط اون زمینه بتونه انسان بشه و به دنیا بیاد. این قوم یهود رو قومی بسیار خاص کرده وقتی که کتاب مقدس رو میخونیم مخصوصا وقتی عهد قدیم رو بررسی می‌کنیم، ما میخوایم که به گسترش این قوم خاص توجه کنیم. در کتاب پیدایش ما میخونیم که این مردم از نسل ابراهیم به دنیا آمدند. ابراهیم پدر اونها بود. اونها نامشون را از ابراهیم گرفتن اسرائیل و یوسف اونها را از قحطی نجات داد. یوسف تصویری از منجی هست وقتی که اونها را از قحطی و انقراض نجات میده. به این ترتیب کتاب پیدایش با این گفته ی یوسف به پایان میرسه. به پدرم بگویید که اینجا به مصر بیاد چون که شما اینجا در جوشن با من زندگی خواهید کرد. در این مرحله، قوم فقط دوازده تایفه بودند. قوم تازه در حال شکلگیری بود. وقتی که کتاب پیدایش به پایان میرسه، فقط دوازده تایفه بودن. و اون دوازده تایفه در مصر بودند. در بین کتاب پیدایش و کتاب خروج، چهارصد سال فاصله هست. این زمان بسیار زیادی هست. کشور امریکا حدود کمی بیش از دویست سال تاریخچه جداره. یعنی حدود دو برابر زمانی که ملت امریکا به وجود آمده. فاصله زمانی بین انتهای کتاب پیدایش و ابتدای کتاب خروج گذشته. در خروج باب به یک میبینید که این دوازده فامیل کیه شدن. شما بارها در خروج باب به یک کلمه کثیر رو میشنوید. این قوم اونقدر سریع ک شده بودند که تبدیل به تهدیدی برای فرعون شده بودند و فرعون تصمیم گرفت اونها رو به بردگی بکشه. پس وقتی 400 سال بعد از اینکه کتاب پیدایش بسته میشه کتاب خروج باز میشه. این قوم این مردم اینکه تبدیل به یک قوم شدند، جمع کسیری از بردگان بودند. فقط گروه کسیری برده. اونها هنوز یک ملت نیستند. خدا میخواد که اونها قومی منحصر به فرد بشن. در کتاب خروج اونها تبدیل به یک قوم میشن. خدا اونها رو شکل میده و تبدیل به یک ملت میکنه. چیزهای زیادی هست که خدا باید انجام بده قبل از اینکه بتونه اونها رو یک قوم بکنه. اون چیزها در کتاب خروج پیش میاد. خیلی مهمه که وقتی به کتاب بعدی میرسیم، اهمیت تاریخی گسترش این قوم برگزیده رو درک بکنیم. دوست دارم که یک خلاصه سریع از گسترش این قوم برگزیده بدم که در پیدایش و خروج شرط دادیم. ابتدا و منبع این قوم خدا بود. خدا این قوم برگزیده رو خلق می کرد اونها رو به این دنیا می آورد تا نقشه های او رو اجرا کنند. میتونست نقشه های زیادی باشه. هدف اصلی از خلق این قوم منحصر فرد این بود که به وسیله اون او در شکل مسیح به این دنیا بیاد، منجی جهان. منبع نهایی این قوم خدا بود. اونا همینطور به وسیله آدم به این دنیا آمدند. این جایی که پیدایش شروع میشه. در پیدایش یک تا تاسه ما دیدیم که آدم منبعی بود که به واسطه او این قوم پدید آمدند. با این حال در کتاب پیدایش ما می‌بینیم که این قوم بعدها توسط ها گسترش پیدا کردند. شما این عبارت رو بارها و بارها در عهد جدید و عهد قدیم میشنوید من خدای ابراهیم اسحاق و یعقوب هستم برای اینکه قوم به این گونه آغاز شد خدا هرگز نمیخواست که اونها فراموش کنند که قوم چگونه به وجود آمد توسط سه پاتریارک ابراهیم اسحاق و یعقوب پس همینطور که قوم به گسترش داد، ما دیدیم که توسط پاتریارک ها گسترش یافت وقتی کتاب پیدایش تموم شد دوازده خانواده بودن یا دوازده طایفه و دوازده تایفه در مصر بودن وقتی کتاب خروج شروع میشه این گروه از مردم که هنوز قوم نشدهاند از دوازده تایفه به جمع کسیری افصایش یافتند. ولی اون جمع کثیر یک قوم نبودن یک قوم جمع کسیری از بردگان نیست پس اونها هنوز قوم نیستند. اونها زیاد هستند. اما قوم نیستند. اگر خدا میخواد اونها رو به یک قوم تبدیل کنه، یکی از اولین چیزهایی که نیاز داشتند یک رهبر بود. کتاب خروج راجع به یکی از بزرگترین رهبرانی که در تاریخ قوم خدا هست با ما صحبت میکنه. موسی مأموریت خواهد یافت و فرا خوانده خواهد شد که رهبر بزرگ این قوم بشه. این جمعیت و یا گروه کثیر بردگان صاحب رهبری خواهند شد. همانطور که می بینیم موسی در کتاب خروج معموریت پیدا میکنه. این حداقل یک گام درست به سوی یک قوم منحصر به فرد شده است یکی از بزرگترین مشکلاتی که موسا وقتی که رهبر این قوم شد داشت این بود که هیچ قانونی نبود هیچ شریعتی نبود هیچ سازمانی نبود که به وسیله اون بتونه بر این مردم حکومت کنه بنابراین سه بار به بالای کوه سینا رفت و چهل روز رو با روزه و دعا سپری کرد او به خدا می گفت خدایا من باید قوانینی داشته باشم اگر قرار هست که رهبر این مردم باشم تصور کنید که حکومت بر اون مردم چگونه بود؟ چیزی در حدود دو سه میلیون جمعیت و مطلقاً هیچ قانون و شریعتی وجود نداشت. چطور میتونید بخواید که رهبر حدود دو سه میلیون آدم باشید بدون قوانینی که توسط اون حکومت کنید؟ این چیزی که ما در حین عبور از کتاب پیدایش به کتاب خروج میبینیم. وقتی به کتاب خروج میرسیم اولین چیزی که باید بر اون تمرکز کنیم مردم هستن. بخش تاریخی عهد قدیم میخواد به ما راجب مردم بگه. کتاب خروج میخواد راجب گسترش این مردم صحبت کنه. کتاب خروج میخواد راجب گسترش این قوم منحصر به فرد که توسط اون خدا به این دنیا خواهد آمد با ما حرف بزنه. در کتاب خروج شما مشکلی هم داری. مردم در جای نادرستی بودن. اون قوم برگزیده در مست بودن و این قوم برده بودن. خدا نمیخواد که قومش برده باشند بنابراین مشکل بزرگی که کتاب خروج به اون پردازه اینه که چطور این مردم را از بردگی نجات بده. کلمه خروج نام این کتاب به معنی راه برون رفت یا بیرون رفتن هست. راه بیرون رفتن از این مشکل بردگی چیه؟ کتاب خروج به غیر از اینکه تاریخی هست تمثیلی هم هست. در سرتاسر کتاب مقدس شما خواهید دید که کتاب خروج و این داستان خروج از بردگی در مشکلات ما کاربرد داره برای مثال در عهد جدید در باب‌های انجیل یوحنا و ازهای عیسی ثبت شده وقتی به آیه 31 از باب 8 میرسید یوحنا می نویسه وقتی او این کلمات رو میگه خیلی ها به او ایمان داشتن و عیسی به این مردم که فقط اظهار ایمان به او میکردن رو میکنه و میگه حالا اگر در کلام من بمانید حقیقت را خواهید شناخت و شاگردان واقعی من خواهید بود وقتی حقیقت را شناختی حقیقت شما را آزاد خواهد کرد بعضی از اونها به او گونه پاسخ دادند منظورت از آزاد چیه ما برده نیستیم و عیسی گفت بله شما برده هستید کسی که دائما گناه میکنه یک برده هست. کسی که مرتبا گناه میکنه کاری رو که میخواد بکنه نمیکنه او این کارو میکنه چون که آزاد نیست ما میدونیم داش می دونیم داشمی گفت که اون حقیقتی که اونهایی که به او بیاند او رو در رابطه خواهند شناخت ایسا گفت: وقتی من شما را آزاد کنم شما در واقع آزاد خواهید بود اعلام آزادی که ما میتونیم از اصارت و بردگی گناه تجربه کنیم به طور تمثیل در کتاب خروج به تصویر کشیده شده در کتاب خروج شما راه های تاریخی برای مشکل قوم خدا میبینید مشکل بردگی بود و کتاب خروج به ما میگه که خدا چطور اون را حل کرد؟ راه برون رفته از مصر چی بود؟ راه گریز از بردگی چی بود خدا راه گریز بود خدا جواب مشکل بود کاربرد واقعی اینه راه گریز از گناه من و شما چیه چطور ما میتونیم از گناه رها بشیم در کتاب خروج شما اصول نجات رو خواهید فهمید اصول نجاتی که قوم خدا را از مصر نجات داد همون اصول نجات وقتی در زندگی امروز خودمون به کار بگیریم به ما نشون خواهد داد که چطور میتونیم از اسارت و سلطه گناه نجات پیدا کنیم؟ چطور میتونیم حقیقت رو بفهمیم، حقیقتی که ما رو از گناه آزاد میکنه؟ آیا شما از اسارت گناه آزاد شده اید؟ خدا خروجی برای من و شما فراهم کرده و دعای من اینه که توسط حقیقت خدا آزادی حقیقی رو کشف کنیم. متشکرم که این هفته باز هم با ما همراه بودید و در کلاس دانشکده کوچک کتاب مقدس با ما شرکت کردی. شاید تنها چیزی که بدتر از بردگی هست اینه که برده باشیم و فکر کنیم که آزاد هستیم همونطور که معلممون امروز به ما نشون داد اگر ما گناه کاریم پس ما برده هستیم و حقیقت خدا تنها چیزیه که میتونه شما رو آزاد کنه باشه که خداوند عیسی مسیح و خدای پدر که ما رو دوست داره و با فیزش برای ما منجی از سلطه گناه تدارک دیده تا ملاقات بعدی ما شما رو در هر کار نیک تشویق کنه.